وانشورو البشر جميعا وانتورو اغلال ورود السلام علیکم ورحمت الله وبركاته شنوانده های گرامی ببخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب میداریم به داشته های امشب احتفو احلا نشی احتفو احلا نشی قد عزمنا قد عزمنا راديو صدى الخلافه خلافه تواجه قد دقت وقينا راديو غلوس الخلافه خلافات عزمنا يا قونا راديو كي كفار راس بادرا وردن جنه كل الجنون نحن جند الله حقا نرفص الأوراح صدقا في جهاد سوف نفقا إنها حرب الوجود لنا المرهفات لضاب القواسم لنا صحة الحق حين التصاد فنحن نسود وبات الطيار إن فل حديد ای چه اهل فلسطین، یهود و نصارا، آیا شما خود را ژورنالیست معرفی کرده اید؟ مگر مردم نمی‌دانند که شما نوکران غرب هستید؟ آیا شما شب و روز به نفع باداران غربی‌تان کار نمی‌کنید؟ آیا شما مردم را به مسیحیت دعوت ننداده اید؟ آیا اسلام امریکایی را شما در جهان مروج نساختید؟ بله. اما مردم می‌دانند که شما دایان غرب هستید. اگر دختران مردم فرار کردند، اگر پسران مردم معتاد شدند، اگر اختلاط زن و مرد به وجود آمد اگر مردم بیدین شدند اگر مردم مخالفت خلافت اسلامی را می میکنند و اگر مردم به مختلف ها واقع شدند بدانید که سبب همه این ها شما هستید اول شما را دعوت میدهند و اگر نه شیران خلافت اسلامی به دنبال شما هستند شما را غافل گیر میکنند و شما را مردم تماشا خواهد کرد باز شعران خلافت اسلامی توسط شمشیرهای بران خود سرانتان را از تنتان جدا میکنند لما اناري وننطي بهدي فسامر رؤوس والشيء بغضي عدات النفوس لحظات <الحسن> خبري سوى خلافه گزارش های همه جانبه از فالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان، لحظات خبری سال خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر میسازد و از تبلغات دروغین رسونه های غربی پرده بر میدار لحظات خبری صلاح خلافت، السلام علیکم و رحمت الله و و خبرهای جهانی خلافت اسلامی خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم جنگنده های امریکایی شهر موسیل را چار بار آماج حمله قرار داد که منجر به شهادت چند شهروندی ملکی کردید مجاهدین دولت اسلامی یک بلدوزر مرتدین کرد را در شهر شدادی با یک موشک هدایت شونده از بین بردند رئیسی ترافیک شهری عدن به نام مروان ابو شوقی از سوی مجاهدین دولت اسلامی ترور شد. همچنین یک خبری دیگر از عدن حاکی که در یک انفجار مانچ چسبکی که بر موتور حامل حذیر الحالمی که مسئولیت کمربندهای امنیتی شهر شعب را به عهده داشت جراحت شدید برداشته است. در حمله مجاهدین دولت اسلامی بر یک مرکز پلیس نیروهای راقی در منطقه کبیسا در غرب شهر هیت بیش از 50 از نیروهای رافیزی کشته شدند در یک حمله تهاجمی دیگر مجاهدین دولت اسلامی در منطقه کبیسا در ولایت انبار بیش از 28 زندانی اهل سنت از جنگ رافیزی ها آزاد شدند جنگنده های امریکای نیروهای کردی را در شمال صدی الفاروق اشتباهاً موردی بمباردمان قرار داد که منجر به کشته و زخمی شدن دهها ها اسکری گردید در دو انفجار جداگانه در جنوب و جنوب غرب شهر شیخ زویدی مصر یک اراده تانک و یک واسطه نقلیه ای ارتش مصر از بین رفت در نزدیک منطقه اددولاب در ولایت انبار مجاهدین دولت اسلامی بلای مراکز رافیزی ها حمله کرد که در نتیجه ده اسکر ایراقی کشته و دو پوستهشان نیز سوزانده شد. یک حمله کننده استشادی موتر مملو از مواد منفجره خود را در شمال شرق شهر رمادی در منطقه رمیله بالای کاروان نیروهای ایراقی کوبید که منجر و کشته شدنی هشت اسکر و جراحت یازدت دیگر گردید. همچنان چار عراد موتر نظامی دشمن نیز از بین رفت. یک تانک روسی از نوی تی پینجا در منطقه جرایشی ولیت امبار از سوی مجاهدین دولت اسلامی منهدم گردید. یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی کاروان نیروهای اراقی را در اطراف منطقه نویعین در شمال شهر هیت آماج قرار داد که منجر به کشت شدن ده ها رافیزی گردید. قومندان خیزش های مردمی در منطقه مهید العبیدی در اطراف شهر بغدادی از سوی مجاهدین خلافت کشته شد. این بود خبرهای جهانی خلافت اسلامی از توجهتان جهان سپاس. طاغوت شناسي. طاغوت شناسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم الله أكبر حق حق دولة الصميد تاقد و یک تاریخ مشهور همی است که تاغوت او را عبادت کردن می شود دیگران او را عبادت می و او از عبادت دیگران راضی باشد این را تاغوت می گن طاغوت حکومت، تاغوت عبادت، تاغوت اطاعت و مطابعت و کسی که دعوان می که به و تعالی ما ایمان داریم به توحید ایمان داریم لیکن قلبا تاغوت دوستاشر باشد یا زبانا تاغوت تاریف میکرد باشد یا احمدان از تاغوت اطاعت میکرد باشد یا از اونه کلمه از اونه نواقضی ایمانه این برنامه را دو شمب شبها و چار شمب شبها از راژیو صدای خلافت فراموش نکنید الافك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد شنوندګونی عزیزی رادیو صدای خلافت با برنامه تاغوت شناسي خوش آمديد الله جل جلاله مخلوقات اشرا نه يو فريده است مگر به عبادت آن ذاتي كه واحد و لا شريك است چنانچه می فرماید و من خلقت الجن والانس ایلا لعبدون من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه که هم کنند. زمان که این مطلب را دانستی پس بدان که عبادت بدون توحید عبادت به حساب نمی آید. چنانچه نماز بدون وضع نماز به حساب نمی آید. و هنگامی که به وضعی پیش آید طهارت از بین خواهد رفت. همینطور زمانی که شرک به عبادت خلط شود، عمل و حقیقت عبادت از بین میرود و عاملش از جمله اهل دوزخ خواهد بود. الله تعالی میفرماید: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فاقد افترا اثما عظیما. الله متعال هرگز شرک را نمیبخشد و پایینتر از آن را برای هر کس که بخواهد و شایسته بدانت میبخشد و آن کسی که برای الله شریکی اقرار گناهی بزرگ را مرتکب شده است و در جای دیگر میفرماید انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنت و النار و ما من انصار زیرا هر کس شریکی برای الله قرار دهد الله بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاه او دوزخ است واسطه کاران یاور و یاری یا ندارد از زمانی یقین پیدا کردی که تحققی مهم ترین چیز عبارت از توحید و مهمترین چیزی که از آن میخواهد اجتناب کنی عبارت از شرک است پس بدان که توحید تو بدون کفر به درست نمی باشد. این نشان می دهد که کفر به از اصل دینی اسلام است و آن اولین امری که الله تعالی بر ابن آدم فرض کرده است و این اولین چیزی است که انبیاء و پیامبران قوم خیش را به آن فرا خواندند به این چیز قال الله تعالی دلیل است که میفرماید ولا قد بعثنا فی کل امتی رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که الله یک تا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید در این آیه مبارکه الله تعالی خبر داد است که در هر طایفه هر قرن و جیلی از مردم رسولی را از زمان بروز شرک در میانه قوم نوح علیه السلام ها آخرین پیامبر حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم فرستاده است و آنها را عمر کرده که الله را پرستش کنید یعنی الله تعالی را در عبادت به یک یاد کنید و بپرهیزید یعنی عبادت غیر الله را ترک نمایید. به خاطر همین هدف مخلوقات آفریده شده پیامبران فرستاده شده و کتب نازل شده است. و کلمه به معنای ترکو یعنی ترک کنید میآید زیرا ترک برای عدم اجرای عمل دلالت دارد و اجتناب نیز معنای دوری و کنارگیری آمده است و این آیت معنای لا اله الا الله را در بر دارد زیرا که متضمن نفی و اثبات است چنانچه کلمه لا اله الا الله متضمن نفی و اثبات است پس در قولی الله تعالی اعبد الله اثبات و در اجتناب الطاغوت نهی نهفته است پس انسان تا زمان که کفر به طاغوت نورزد مؤمن حقیقی شده نمیتواند. الله تعالی فرموده است: فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ تَنفَصِلَ مِنْهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. بنابر این کسی که به طاغوت کافر شود و به الله ایمان آورد، به دستگیری محکم چنگ زده است که گسستن برای آن نیست و الله شنوا و دانا مراد از اور و اینجا ان توحید است یعنی شهادت لا اله الا الله کلمه‌ای که در آن دو وجود دارد اول کفر به دوم ایمان به الله پس اسلام کی آری از توحید باشد اسلام نیست و بنده تا زمانی که به طاغوت کفر نورزد چنگ زننده و رسن محکم نشده است و این یک امر مسلم و متفق علیه است کسی را که الله تعالی قلبش را با توحید منور نموده باشد هجگون نزاعی در آن نخواهد کرد ای بنده ای الله خاطر کافر به طاغوت لازم است تا معنای این کلمه را بدانی و صفت کافر به آن را تا که رکن کافر به طاغوت به شکل کامل تحقق یابد تا که به این کار موحید خالص گردی تعریفی لغوی و شرعی طاغوت طاغوت در لغت بر گرفته شده از سیغه های تاقای تقا و یتغو تقیانن تجاوز از حد و هر کسی که از حد و حدودش تجاوز کرده باشد پس به با تحقیق تقیان کرده است و تاقود از تقیان مشتق شده است تاقود بر سیغه های مفرد جمع مزکر و مؤنس استعمال می شود و جمع تاقود تواقیت است اما معنای شرعی شیخ الاسلام ابن تیمیه در قولش این کلمه را چنین تعریف می کند تاقود از تغیان گرفته شده و تغیان تجاوز از حد را گویند پس معبودی بغیر از الله که این معبودیت را بد نبیند تاغوت است پیروی کننده از معصیتی الله تاغوت است از همین جهت کسی که بغیر از کتاب الله تحاکم کند تاغوت است و فرعون آت نیست تاغوت نام نهاده شدند امام محمد بن عبدالوحاب فرموده است تاغوت کلمه عام است در مورد هر کسی که بدون الله تعالی عبادت شود اطلاق اط شیخ عبدالله بن عبدالرحمن میگوید: طاغوت شامل تمامی معبودی و غیر از الله تعالی می شود و هر کسی که در رأس گمراهی دیگران را به سوی باطل دعوت و آن را تحسین نماید و هر کسی که خود مردم برای حکم بینشان بر اساس احکام جاهلیت تعیین نموده باشد و همچنان شامل فالبین، جادوگر و غیره می شود. شیخ سلیمان بن سحمان میگوید: عبارات سلف در تعریف طاغوت متعدد است. و بهترین چیزی که در مورد تاغوت گفته شده همانا قول ابن قیم رحمه الله است. چنان چی می گوید زمانی که بنده از حدش در حق معبود، مطبوع و یا مطاق تجاوز کند تاغوت است. تاغوت هر قومی است که به غیر از کتاب الله و رسولش تحاکم نماید. یا و غیر از الله تعالی آن را به عبادت گیرند. یا بر غیری بصیرت از الله تعالی از کسی پیروی کند. انواع تاغوت و سران آن. طاغوت بر سینو است. طاغوت حکومت، طاغوت عبادت، طاغوت اطاعت و متابعت، طاغوت زیاد است. سران آنها پنج اول داعی شیطان به سوی عبادت غیر الله. الله تعالی میفرماید: "أَلَمْ أَهْدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ" آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید؟ که او برای شما دشمن آشکاری است، پس شیطان تاغوتی بزرگ است، کسی که همیش برای منصرف کردن مردم از طاعت الله تلاش می نماید. قسمتی از بشر نیز در جلوگیری مردم از طاعت الله با شیطان شراکت دارند و اینها نیست تواقیتن. دوم، حاکمان که احکام الله را تغییر می دهن. الله تعالی میفرماید،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 آیا ندیدی کسانی را که گمان می کنند به آنچی از کتابهای آسمانی که بر تو و بر پیشینان نازل شده ایمان آورده اند ولی می خواهند برای داوری نزد تاقود و حکام باطل بروند با این که به آنها دست دور داده شده که به تاقود کافر شوند؟ اما شیطان می آنان را گمراه کند و به بیراه های دوردستی بیفکندد؟ سران دولت ها، حکومت ها، مالکان، و آن امیرانی که احکام شریعت را در مقابل قوانین وزعی، احکام عرفی و تقلیتهای مردمی تبدیل یا به شکل معلق در میارند از همین جملهند. مانندی رد کردن حدود، جهاد، زکات و غیره. سوم کسی که حکم بغیر از نازل کرده ای الله نماید. الله تعالی می فرماید و من لم یحکم بما انزل الله فأولئی هم الكافرون و آنهایی که به احکامی که الله نازل کرده حکم نمی کافرند ابن قیم میگوید کسی که جنجالش را به سوی غیر الله و رسولش به تحکم بکشاند پس به تحقیق تاغوت را به حاکمیت گرفته است به تحقیق به بنده عمر شده است که به تاغوت کافر ورزد تا زمانی که بنده تمام حکم را مخصوصی الله واحد نداند به تاغوت کافر نشده است وقتی حاکم یا قاضی بین دو دومتخواسیم غیر از آن چی که الله نازل کرده فیصله نماید، مانند قوانین وزعی، عرفی، اجتماعی یا با خواهشات نفس پس به تحقیق از دین الله تعالی رو و از تاقود گشته است. این اینچنین هر آن کسی که به سوی این حاکمی که غیر از حکم الله فیصله می کند، مراجعه نماید آنها از جمله کفارند، الله تعالی می فرماید، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحکمو که فيما شجر بينهم ثم لا يجدو في انفسهم حراجم مما قضيت و يسلمو با پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود مگر این که در اختلافات خود تو را بداوری طلبند و سپس از داوری تو در دل خود احساس نراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند در این آیت، الله تعالی ایمان را از آنها نفی کرد، زیرا آنها شریعت الله را بین خود تحکیم نکردن، چنانچه که الله تعالی ایمان کسانی را که به سوی طاقود تحاکم میجوستند یا قصد تحاکم را داشتند، نفی نموده بود، چنان که در آیت سابقه گذشت، یریدون انگی تحاکمو ایل طاقود. چارم، کسی که ادعای علم غیب را نماید، الله تعالی میفرماید، قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون کسانی کې در اسمانو و زمین هستن غيب نميدانند جس الله واحد و نميدانند كاي بر انغيخته ميشوند پس کسې کې ادعامه نيمايت كالم را رو ميدانت او تاغوت است زه را نفسش را شريكي الله قرار داده و در يكى از صفات ربوبيت با الله نزا است الله تعالی می فرماید وعینده مفاتح الغیب لای علمها إلا هو کلیدهای غیب تنها نزد اوست و جز او کسی آنها را نمی داند همچنان می فرماید علم الغیب فلا يظهر علی غیبه احده دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی سازد بر اساس همین دلائل مدعی غیب تکذیب کننده سریح قرآن است برای مسلمانان واجب است دانای تا از رفتن به سوی هر آن کسی که ادعای علم غیب را می نماید، محتاط باشند، مانند ساحران، فالبینان و غیره. پنجم کسی که در عبضی الله تعالی عبادت شود و از این عبادت راضی باشد، یا کسی که مردم را به سوی عبادت خیش فراخاند، الله تعالی می فرماید و من یقل منهم اینی اله هم من دونه، فذاری که نجزیه جهنم که ذاری که نجزی الظالمین، و هر کس از آنها بگوید من جز الله معبودی دیگرم جزای او اورا جهنم میدهم و ستمگران را این گونه جزا خواهیم داد پس عبادت حقی الله تعالی است و برای هیچ کسی مناسب نیست که برای عبادت نفسش دعوت نماید یا برای عبادت غیر الله دعوت کند پس هر کسی که این عمل را انجام دید یا بغیر انجام به این گونه عبادت ها راضی باشد از جمله تاغوت است شنواندگان عزیز این بود معلومات امروزی در مورد تاغوت تا برنامه های دیگر الله نگهدارتان والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته شریعتنا شریعتنا شریعتنا شریعتنا شریعتنا شریعتنا شریعتنا شریعتنا قیام و حجت و حجت پرسیش های داغ قایم کردن حجت قبل از قتال قبل از بوجود آمدن امارت تنظیم های تقریبا هفگانه در افغانستان در مقابل روسا مصرف جنگ بودن اینا دشمن های موحیدین دشمن هی خواست موحیدین بودند. اینا می که نام و نشان توحید و موحیدین را از سرزمین افغانستان نابود بسازند. مباحثه سیاسی و تحلیلی در مفاهم شرعی در مجموع میدیا رسانه های جمعی و مدبوعات زیر اثر غربی ها هستند. دشمن که علی ما می جنگند به دو قسمت یکی دشمن است که انگیزه دارد و یکی دشمن است که انگیزه ندارد. پای ش ب از رادیو صدای خلافت ن FM حقامت را مقاومیم. بالاغلى لمحنتهم جلت عن الوصف يا ای برادران و خواهران که شما در زندان های کفار تحت شکنجه آنها هستید صبر کنید که شیران خلافت اسلامی قریب است که انتقام شما را از ایشان بگیرند ماشا برزارم ننوشتید قریب قریب تروا العجيبه صراع رهيبه قریب است قریب است انشاءالله تعالی که این نکران و غلامان غرب را شیران خلافت اسلامی مانند اقاب به شنگال خود در آوردن و ایشان را بکند جهانون پرتاب کنند حای سگان خربه که شما به نام امنیت ملی شب و روز به دنبال مجاهدین افتاده اید انتظار بکشید انتظار روز را رو بکشید که شیران خلافت اسلامی شما را لباس سرخ بپوشانند حای چاپارستانه که شما به نام ارضی ملی و پلیس ملی هستید شمشیر و بران لباس های سر چهره مجاهدین دلیر و جهنم را به یادت بیاورید برای شما اختار میدهم، یا سکه خود دست بردار شوید و در آن روز توبه شما پذیرفته نمی‌شود به اذن الله سمت منحرا بی اشباح لیل و فتیان هولین و تفجیری ویلی لیکی یدحا بحلف الضلالی فدوقو و بالی دکر المعارک و طاری های سلینی میدان بازار معامل میان بنده و پربردگارش هست جایی است که مطای آن جان و مال از طرف بنده و بهیشت از طرف الله است میدان جهاد میدان کارزار کشتن و کشت شدن است میدان بمباردمان و میدان تیر باران است و میدان شهادت طلبی است پس ای بنده ای الله ای کسی که خب جهاد و ایلای کلمه ای الله را در دل داری و میخواهی با دشمنان الله بجنگی و در دنیا و آخرت سر برند شوی تفکر کن تدبر کن جستجو کن، عجله نکن مبادا به گروهی بروی که نخشه کافران را عملی می کنند مبادا با گروهی بپیوندی که با حمایت نظامی و مالی کافران و مرتدین می جنگند مبادا با گروهی بروی که شریعت الله را اجران می کنند مبادا به گروهی بروی و در روز قیامت در جواب الله ناتوان بمانی، انگامی که از تو سوال شود چرا جنگیری و بگویی در راه تو پس الله بگوید درو گفتی بلکه برای تعصق به برای شهرت جنگیری پس بر حضر باش و دقیق انتخاب کن تلقى في المر يرويني تلقى في تل المعالي اوسبداني بالكف مصحف خرا الشاشي سجليني سيف البطوله لي من صلت بماني كل المنايا بكى في المر يرويني تلقى في تل المعالي اوسبداني بالك بمصحف خراش شي سليني سيف البطول يا من صرت بي ماني <تصفيق> بی وعدهی تعالی علی المرد به سبب الله تعالی به مؤمنان الله عز وجل ما را در این زمین جا داد و به ما روزی داد این را و بر ما احسان گذاشت که شریعت الله تعالی را دران تدبیق کنیم و پیانبر صور الله علیه وسلم می فرماید رزق من مقرر شده زیر سایه نیزه من پس ما یک روز هم به خاطر این مال و این خاک نجنگیدیم بلکه برادران ما مالها و جانهای خود را قربان کردند فدای یک هدف تا آنکه کلمه الله برتر باشد و کلمه کفار پستر امی دیر برادران پس ای برادران محبوب من این هدف اول متحق می شود به وعده الله و سپس به خونهای ما پس نیست هیچ طریق پیروزی بجز قربانی دادن و جهاد در راه الله بس <سحن> الله <سحن> We are men that death, <laughs> the soldiers that in the day and the night We're the soldiers that fight in the day and the night Going forth, preparing to roar Are the brothers of light with comfort inside Their ranks some many and weapons are heavy But soldiers of Allah are more than ready Soldiers of Allah are more Then ready I mean, For the sake of So the, the paradise where I will be We men that love death, just as you love for life For the soldiers that fight in the day and the night For the soldiers that fight in the day and the night Defending the pride of our sisters who have pride For fearing them, but the Almighty has won. Their voices motivated the men who migrated To fulfill the duty of making God's Word the greatest To fulfill the duty of making God's Word the greatest For the sake Allah, we will march through the gates Of the paradise where our maidens awake We men that love death, justice, you love your life. We're the soldiers that fight in the day and the night. We're the soldiers that fight in the day and the night. Oh, oh my brothers, jihad is the way To bring back the honor of our glorious days. The promise of Allah will always remain. that fighting for مسلمانان گرامی این بود داشته های برنامه امشب ما تا فردا بعد از نماز مغرب که باز هم با برنامه های پشتو داری در خدمت شما قرار میگیریم شما را به الله عز و میسپاریم السلام علیکم و رحمت الله و براکاتو the so do the fight in the day and the night And now time has come for the battle to be won Shahad on our tongues as our hearts beat as one The sunnah is alive, khaylaf on the rise The flag of Tawheed shining bright before our eyes The shining bright before our eyes